اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها المزمیل به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ای جامه به خود پیچیده قومی لیل قلیلا شب را جز کمی بپاخیزصففه او بص منه قاللةنینی از شبرا یا کمی از آن کم کن اووز عه وقررآ تلة یا بر نصف آن بافسا و قرآ را با دقت تعل بخن إن سن القك قلا فقيلة چراک ما به زودی سخنی سنگین به تو القا هیم کرد این ناجئت الليل هی اشد وطعا و اقوام نماز و عبادت شبانه پا برجاتر و با استقامت تر است این لکه فی النهار سبحا طویلا و تو در روز تلاش مستمر و طولانی خواهی داشت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 نگاهبان و وکیل خود انتخاب کن وصبر على ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا و در برابر آنچه دشمنان میگویند شکی با باش و به ترزی شایسته از آنان دوری گزین و ذرنی والمکذبین اول نعمت و مهلهم قليلا. و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت واگذار و آنها را کمی مهلت ده این لدینا انکالا وجحیما که نسد ما قل و زنجیرها و دوزخ است و طعاما ذا غصت و عذابا علیما و قضایی گلوگیر و عذابی دردناک یا در آن روز که زمین و کوه سخت به لرزه در میآید و کوه چنان در هم کوبییده می شود که به شکل تودههایی از شن نرم در میآید. اننا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما كما ارسلنا الى فرعون رسولا ما بيامبري به سوی شما فرستادیم که گواه بر شماست همان گونه که به سوی فرعون رسولی فرستادیم فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا و ولی فرعون به مخالفت و نافرمانی آن رسول برخواست و ما او را سخت مجازات کردیم فکیف تتقون این کفرتم یوما یوما یجعل الولدان شیبا شما نیز اگر کافر شوید چگونه خود را از عذاب الهی برکنار میدارید می‌دارید در آن روز که کودکان را پیر می‌کند آسمان به و آسمان از هم شکافته شود و وعده او شدنی و حتمی است تذکره فمن شا اتخذ الى ربه سبیلا این حشدار و تذکری است پس هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمیگزیند إن ربك يعلم أنك تقوم ادنا من ثلثی لیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون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 وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله وخيرا واعظم أجرا. الله ان الله غفور رحيم میداند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم از شب یا نصف یا سلس آن را به پا می خیزند خداوند شب و روز را اندازه گیری می کند او می داند که شما نمی توانید مقدار آن را به دقت اندازه گیری کنید برای عبادت کردن پس شما را بخشید اکنون آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید او آن به زودی گروهی از شما بیمار میشوند و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل الهی و کسب روزی به سفر میروند و گروهی دیگر در راه خدا جهاد می کنند و از تلاوت قرآن باز میمانند پس به اندازه ای که برای شما ممکن است از آن تلاوت کنید و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و به خدا قرض الحسنه دهید در راه او انفاق نمایید و بدانید آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش میفرستید نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از خدا آمرزش به طلبید که خداوند آمرزنده و مهربان است